دادا در مقابل استاد ماکان از خود گذشته بود همه چیز خود را مدیون او میدانست. اساساً در صفوف این جوانان از خودگذشته در پاریس من هایی دیدم که عیناً نظیر آن چیزی است که در کتب دوران گذشته می‌خوانیم اینها وقتی به کسی اطمینان داشتند از همه چیز خود چشم می پوشیدند منتها در گذشته شاید تعبدی بود ولی امروز دانسته و سنجیده و فهمیده ماکان استعداد خداداد را پرورش داده بود او بود که وسایل عزیمت بچه باقوان در را به اروپا و تحصیل وی را در پاریس فراهم کرد روزی از مروان پرسیدم چرا آنقدر شیفته استاد ماکان است گفت من خود ماکان را ندیدم اما بنا بر چه خداداد میگوید اصاد را بهتر از خود میشناسم. چطور او را می شناسید؟ آدمی است؟ گفت شما که او را دیدید؟ گفتم من یک بار بیشتر با او روبرو نشدم مرد خودخواه و خشنی به نظرم آمد گفت اینجور نباید باشد گفتم دبه بگویید گفت به شما می اما خداداد میل ندارد که کسی درباره این مطلب صحبت کند برای اینکه خطرناک است ممکن است استاد را در تهران بگیرند اما شما به هیچ کس نگوید من هم همهش را نمیدانم یادتان میآید که چند سال پیش دویست نفر محصل و معلم و طبیب را در تهران و بعضی از شهرهای دیگر گرفتند یکی از کسانی که قرار بود گرفتار شود و هنوز هم شهربانی با دنبال اوست همین خداداد است. ماکان نجاتش داد. یک هفته او را در منزل خودش پنهان کرد. بعد به یکی از دهات های تهران که متعلق به یکی از دوستانش بود فرستاد. در زم برای خداداد یک سجل جعلی درست کرد. همین که رئیس شهربانی عوض شد و از آسیاب افتاد، تسکره برایش گرفت و او را به فرنگستان فرستاد. خداداد اسم حقیقی او نیست. اسم حقیقیاش را به من هم نگفته مدتی خرجش را میداد تا اینکه از تهران به وسیله همین استفانای نقاش ایتالیایی اقدام کرد و استفانا او را در اکلدسبیوکس آرس پذیرفت و تصدیقی بهش داد این تصدیق باعث شد که وزارت فرهنگ او را جز محصلین دولتی به حساب بیاورد مرتب خرج تحصیلش را میگرفت و زندگی بدی نداشت زندگی خوبی می توانست داشته باشد اما او بیشتر پولش را خرج همین روزنامه و رساله و چاپ کردن می کند. گفتم من هیچ باور نمی کنم که استاد یک چنین آدم زرنگ و بیپروایی باشد. عدب عجب آدم است مهبانو گفت برعکس استاد مکان خیلی آدم عجیبی است بگذارید خود خدا داد تعریف کند. گفتم، آخر در ایران با آن فشاری که آلان هست مگر از جانش سیر شده. گفت، مگر خدا داد اینطور نیست. درست است که آدم اینجا در فرنگستان مخصوصا وقتی که زیر همه چیز زده باشد جرأتش بیشتر می شود. با وجود این آدم های عجیبی هستند. به فکر همه هستند به جز خودشان خودشان. همیشه خطری را که مرا تهدید می می‌بیند و مرا حفظ می کند. اما در فکر سلامتی خودش نیست با من زیاد در های پاریس راه نمیرود مواد و کسی از سفارت ما دو نفر را با هم ببیند و مرا به تهران احضار کنند و خرج تحسینم قد شود سفارت به همه دانشجویان ایرانی بخشنامه کرده است که با او آماده شد نکنند همه اهل سفارت عقیدهشان این است که فقط او محصول ایرانی را از راه به در می براد و به فکر سیاست میاندازد. پرسیدم چطور شد که خرج تحصیل او را قطع کردند؟ گفت سر همین مقالاتی که در روزنامه های فرانسه نوشتند. گفتم مگر این مقالات را خداداد نوشت؟ گفت نه خیر. مقالات که اون نمی نوشت. اما پسره بود به اسم غیرت این جاسوس سفارت بود میآمد از شاه و دولت پیش بچه ها بدگویی میکرد و بعد وقتی کسی چیزی می گفت چند چندتا هم روش میگذاشت و به سفارت گزارش میداد در بردو از دکان مردم یک جبه عکاسی و سه ماه حبسش کردند و روزنامه های بردو عین واقعی را نوشتند روزنامه پیکار خبر روزنامه بردو را تحت عنوان. جاسوسان سفارت را بشناسید نقل کرد سر این موضوع ما بین ایرانی جر و بحث شد بسیاری باور نمیکردند خداداد به احتاطی به خرجات و نسخه روزنامه بردو را بسم لاویکس د ب را که آن، را که در آن داستان دزدی غیرتی داستان دزدی غیرت نقل شده بود پیدا کرد و به همه نشان داد معلوم است پسر سر این موضوع با خدا داد لج افتاد و کینش را به دل گرفت بالاخره غیرت مجبور شد با تفسیات ناتمام به ایران برگرد و پس از یک سال به پاس خدماتی که در فرانسه به آبروی کشورش کرده بود رئیس تعلیمات عالیهٔ وزارت فرهنگ شد و از آنجا گزارش محرمانه و مستقیم به دربار داد و در نتیجه خرج تحصیلش را بعد کردند من استه دل شیفته این پسر و دختر شدم. با چه جرأتی با هم کار می‌کردند؟ هیچ کدام در فکر نبودند که بالاخره همیشه این جور زندگی کرد. می میگفت وقتی تحصیلام تمام شد به ایران برمیگردم. از او پرسیدم با خدا داد چه میکنید میگفت او هم خواهد آمد. میگفتم آخر با این اوضای اگر بیاید حبسش میکنند میگفت مگر اوضا همیشه اینطور میماند امید به آینده شیرین ترین دلداری آنها بود اقلن هفته دو سه بار با آنها سر میزدم گاهی به او کمک میکردم نقش و نگار حواشی مینیاتور را برایش میکشیدم روزهایی را که میخواست به ایران بفرستد لفاف میکردم و به پست میرساندم وقتی حس کردم که از هی پول در زحمت است و زندگیش با فروش مینیاتور نمیگذرد دوبار بار با پست هر دفعه فرانک برایش فرستادم. چندی بعد یک روز به خانه اش رفتم. دیدم روی تخت افتاده و تمام بدنش ورم کرده است. معلوم شد که کبدش ناخوش است. پول نداشت که پیش دکتر برود. همین که وارد اتاق شدم به مهربانو گفت خب مهری حالا اگر تو بخوای بروی مانعی ندارد شما وقت دارید یکی دو ساعت اینجا بمانید گفتم من هیچ کاری ندارم و اگر وقت نداشتم باز هم حاضر بودم تمام شب را پیش شما بمانم اوه مهری میبینی چی میگه حالا حسودیت نمیشه مهر گفت خودتو لوس نکن ببین تو چقدر بدی همین که دختر رفت گفت من بی پول شدم می توانید کمی به من قرض بدهید؟ گفتم هر دارم میدهم پرسید چقدر دارید؟ گفتم در بانک مقداری دارم الان هم دیویس صد فرانکی دارم گفت ببین درست چقدر پول داری نگاه کردم دیویس هفتاد و پنج فرانک پول داشتم آنها را در آوردم و به او نشان دادم و گفتم همش را بردارید قیافش تیره شد ابروش را در هم کشید و گفت بلند شوید در آن چمدان که زیر تخت خواب است باز کنید دو تا پاکت آنجاست بدهید به من اطاعت کردم خط خودم را روی پاکت ها فوری شناختم. اما دو پاکتی بود که به وسیله پشت برایش فرستاده بودم آنها را باز کرد. 400 فرانک درآورد و گفت بفرمایید این پول ها مال شماست دیگر برای من پول نفرستید این پول مال من نیست دروغ نگویید من میخواهم با شما جدی صحبت کنم به حدی با این بیان با بیان این جمله تحکم و میز و گفت که من تعجب کردم چطور جرات میکرد این طور به من و نحی کند به شما گفتم من مرعوب شده بودم نخستین بار در زندگی با مردی روبرو شده بودم که از من قوی تر بود و زیبایی من کوچکترین اثری در او نداشت آقای نازم من تمام صحبتهای آن روز را عینا به خاطر ندارم چون یک ساعت و نیم بلکه بیشتر تنها حرف میزد اما این را میدانم که وقتی از خانه او بیرون آمدم تصمیم قطعی خود را گرفته بودم الان سعی میکنم به شما بگویم که من چه گفت و چگونه زندگی من را در هم میخت من آن روز خود را به او نشان دادم تمام گروه و گوله هایی که در حفره های دل من بود حل شد باز شد صریحا به شما میگویم پس, پس از آن روز این دومین بار است که دارم دل خود را بی بیپرده به کسی نشان می میدهم بدبختی من هم همین است استاد ماکان این مدر آنقدر ناترس و فداکار بود و دلهای مردم را در اختیار داشت نخواست و یا نتوانست ادراک کند که در اعماق روح من چه قوای شیطانی و در عین حال چه نیروهای انسانی با هم در ستیزند اما او این پسره پرشور که فقط دو سال از من بزرگتر بود مرا مثل جوجهای در مشتش گرفت نفس مرا بند میآورد اما همین که دستش را باز می کرد و من می توانستم هوای آزاد را سنچاق کنم آن وقت تمامی نوازش که در دست او بود در مشت پر او بود می چشیدم نگفتم به شما که من دو روح در یک جز بودم او می توانست فرشته ای را که در من بود پرورش دهد اما استاد شما فقط اجده را در من پروراند. به من گفت دلت به حال من سوخ که به من پول دادی اگر راست میگویی چرا دلت به حال آن دهاتی هایی که پدرت در تهران لغمه را از دهانشان از دهان بچه های بیرون میکشد نمیسوزد مدتی با من صحبت کرد کلماتش به دل مینشست و من خوب احساس میکردم که برادران و رفیقانه دارد من را از گردابی که در آن گیر کرده بودم نجات میدهد دهد. اول راجب به نقاشی با من صحبت کرد به من می گفت ممکن نیست به توانی هنرمند قابلی بشوی آخرین سنگلاخ پرخطر است. تو هرگز زجر ناکامی را نچشیده ای در محیطی که در تهران پرورش یافته ای در حلقی که اینجا دور خودت کشیده ای نمی توانی هنرمند بشوی کسی که در عمرش گرسنگی نکشیده کسی که از سرمان نلرزیده کسی که شب تا سحر بیخواب نمانده چطور ممکن است از سیری، از سکرما، از پردوی آفتاب به صبح لذت ببرد. یک بار رفتی پیش و استاد مکان به تو بی احترامی کرد. بسیار خوب، چه توقعی داشتی؟ چه برای او هدیه برده بودی؟ میخواستی تو را دامن دامنت را بگیرد؟ میخواستی باز هم بروی؟ میخواستی بار سوم بروی؟ از او تقاضا کنی؟ از او چیزی را که در اختیار دارد که در دست همه کس نیست. او هنرمند است. او بر ارواح انسانها تصدت دارد. او میتواند مردم را غمگین کند، بخنداند، بگیریاند، سر شوق بیاورد، به زندگی وادارد. او چیزی در اختیار دارد که با پول، با جان هم نمیشود خرید. اما... تو به خوشگلی خود مینازی و چون اراذل دور و بر تو دوست میکردند خیال می کردی که استاد هم باید به زانو تو بیفتد و تو به او تکبر بفروشی یک بار پیش استاد رفتی ندید و نشناخته درباره او قضاوت کردی و آمدی راه آسانتر را پیش گرفتی پیش خودت گفتی پول دارم و میروم به فرنگستان آنجا از این نقاش ها هزار تا هستند و با پولی که دارم از آنها هنر یاد میگیرم پدرت که برای نوشته است، اگر برادر داشتی، اگر امو داشتی، همه افراد طاقه تو همین طور به تو نصیحت می کردند. شوهر کنو و برگرد. اگر پسر بودی، میدانی پدرت به تو چه نصیحتی می میگفت با یک دیپلم برگرد. بیشتر از اینها که الان در تهران هستند، از این دیپلم ها دارند و زندگی می کنند. خوب هم زندگی می کنند، اما هنرمند نیستند. تا پنجاه دیگر، تا صد ساده دیگر و بلکه بیشتر باز هم درباره استاد مکان مردم صحبت خواهم کرد. اما این شاهان و وزیران همین که مردند فراموش می شوند. اینها که برای تو مهم نیست، تو که شهرت طلب نیستی، تو دنبال پول معلق ملق نمی زنی، تو عقب خوشبختی پرسه میزنی با دیپلم، با پول، با شوهر، با این چیزها آدم خوشبخت نمی شود، باید درد زندگی را تحمل کرد تا از دور خوشبختی به آدم چشمک بزند ببین من علیل هستم شاید هم سل دارم نمیدانم شاید هم خیال می کنم. در هر صورت بیمار و علیل هستم مادرم مرا در اتاق کوچکی ته باغ به طوری که صاحبخانه شیون او را نشنود به دنیا آورده در آن اتاق پر از نم و بیمار پرورش یافتم. خودم میدانم که عمر من زیاد طولانی نیست چند سال دیگر بیشتر زندگی نخواهم کرد اما خوشبخ هستم برای من یقین است که کاری دارم انجام میدهم در عرض ده سال دیگر اقلن صدها بچه مسلول نجات پیدا خواهند کرد این مرا خوشبخت می کند این است که از مبارزه نصیب من می شود از هیچ کس هم نمی ترسم نه از رئیس نظمی و نه از بخشنامه های سفارت حالا که آنها از من می ترسند. وقتی یکی از تصویرهای من در یکی از اکسپیزیانت پاریس منتشر می شود و سفیر ایران تلگرافی به تهران گذارش می من از فرد خورشی در پوست خود نمی کنجم. اما ناامید نباش هنوز دیر نشده می توانی خوشبخت بشوی راه هنر هنوز به روی تو باز است از این ولنگاری که بدان مبتلا شده ای دست بردار کار کن زحمت بکش پول فراوانی را که داری در راه دیگری خرج کن بشین در خانت در مدرسه زحمت بکش درد ناکامی را تحمل کن تا نقاش بشوی توهین میکرد به من به خانوادهام به پدرم به همه نادانسته توهین میکرد اما راست میگفت هرچه میگفت عین واقع بود ته دل می میسوزاند وقتی سفهاش میگرفت چند ثانیه ای کرد که نفس تازه کند گفتم خدا داد اما دیگر دیر شده دیگر من بی خودم را حس می کنم بغز گلویم را گرف حقق حق گریه سر دادم این نخستین باری بود که خود را در برابر مردی زبون می دیدم. خدا داد گفت گریه کن بد نیست اما نه وقتی من هستم من گریه زن را نمیتوانم تحمل کنم چرا دیر شده مگر چند سال از عمرت گذشته چرا انقدر شتاب می کنی بعضی یک امزج می کشند و میوه عمر خود را در پیری می چشند تو هنوز پنج سال هم نیست که داری نقاشی می کنی و هنوز هیچ چیز نشده که می خواهی شاهکار بسازی گفتم نه صحبت از شاهکار ساختن نیست من تنبل هستم من از خود منشأ اثری نمیتوانم باشم ببین من زیر دست تو هر کاری که بگویم میکنم اما خودم به ذاتم نمی کار کنم از این جهت ناامید هستم مکرر تصمیم گرفتم که بنشینم و زحمت بکشم اما نمیشود یک سوت جوانک ولنگاری که از زیر پنجره من رد می شود مرا به عالم بیاری می کشد. به کی این حرف ها را بزنم گفت بسیار خوب، تنها راه خوشبختی نقاش و هنرمند شدن نیست چه اهمیتی دارد همانطور که هزار راه به پستی و نیستی منتهی می شود راه تعالی هم تنها هنرمندی نیست خیال می کنی که به نمی توانی کار کنی بیا برو تا دیگران به تو کمک کنند تا بتوانی از جدی که طبقت تو را در آن بیرون بیایی بیا برو ایران برو پیش استاد آنجا زیر دست او کار کن اما با تواضع به او نزدیک شو مردم مملکت ما آنقدر بیچاره و محتاج و مساعدت هستند که تو از هزار راه میتوانی سودمند باشی. شاید همین دردی که امروز تحمل میکنی راه نجات تو باشد. برای اینکه هنرمند بشوی باید حتما انسان باشی. تو نمیدانی که مردم هموتن تو در چه مرحله از زندگی به سر میروند. به سر میبرند. بیا برو ایران آدم شو. شاید راه موفقیت رو بیا بی. آخر زندگی ف... که فقط وجود خود تو نیست حالا که نتوانستی از اجده هایی که درون خودت میشناسی در پرده نقاشی چیزی جلوهگر کنی بیا و اجدهها را در زندگی اجتماعی مردم ایران بکش و این موفقیت تو که در نتیجه آن هزاران نفر مردم ایران رهایی خواهند یافت خوشبختی تو را تأمین خواهد کرد بیا برو به ایران آنجا عدده از جوانان ایران که تحصیلاتشان را در اروپا تمام کردهاند، تشکیلات مخفی دارند هنوز کاری از آنها ساخته نیست اما روزی خدمت بزرگی به این مملکت خواهند کرد آنها به کمک امساال تو احتیاج دارند همین خوشگلی تو که به ووال جانت شده ممکن است به حال آنها در انجام کارهای دشوارشان مفید باشد برو پیش استاد بخواه که پیش او کار کنی برو ایران برو پیش استاد نه باقا با او رو تکبر بلکه با خصضو از خود گذشتگی بگو که چهار پنج ماهی همکار من بوده ای بگو که من تصمیم خود را یکی دو روز بعد گرفتم. آقای نازم، رمز آنچه استاد در این پرده در چشم این صورت گنجنده در همین تصمیم من است از همین جا اشتباه کرد. خودم هم نمیدانم تا امروز هم نفهمیدم، نمیدانم به ایران آمدم که خود را از فلاکت و زلتتی که در پاریس گرفتار شده بودم نجات بدهم یا به این... یا اینکه به ایران آمدم که پیش او بروم و خود را به پای او بیندازم و عشقش را طلب کنم و یا اینکه به ایران آمدم تا توصصیه خداداد را وسیله نزدیکی و آشنایی با او قرار دهم و انتقام خودم را از مردی که مرا به این روز سیاه انداخته بود بگیرم و یا به اینکه، به ایران آمدم که زندگی شرافتمندانه مندانه پیش بگیرم و انسان مفیدی باشم. این را نمیدانم، و او هم مردی که می زندگی مرا قالب گیری کند، او هم اول مردد بود. اما با اینکه چشم های حرزی که در این صورت از من کشیده، بزرگترین توهین را به من روا داشته، او خیال کرد که من برای بدبخت کردن او به قصد انتقام باید